بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام اشرف الأنبياء والمرسلین و علی علیه و اصحابه اجمعین امبات بعد. شرسته بعد از پایان سوره بقره حالا بحثهای از سوره یوسف و داستان حضرت یوسف علیه الصلاة و السلام حکمتها و اون برداشته که از سوره یوسف علیه الصلاة والسلام می شود را الله مختصرا در حد توان انشاءالله می گی سوره یوسف که خداوند متعال داستان حضرت یوسف را به احسن قصص یعنی بهترین داستان بیان فرمودهاند اول این است خداوند متعال در بیان داستانها هدف بیان قصه گفتن نیست بلکه بیان حکمتها و درسها در قالب داستانها تاکه اون حکمتها و داستانها بهتر اینها مفهوم باشن. پس بنابراین پس بنابراین اول اسم حضرت یوسف یوسف فرزند حضرت یعقوب یعقوب فرزند حضرت اسحاق اسحاق فرزند حضرت ابراهیم علیهم السلام پدر پدر بزرگ و جد امجد هم نبی نسل در نسل اینها نبی هستند مادر حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام راحیل بود راحیل بنت لابان الله رب العالمین در بیان این داستان یک قصه را به معنا بیان فرمودهاند تاکه اون حلاوت داستان بماند اما لاله لا این پر از حکمت و بصیرت و احکام زیادی هستند که بیان می کنند حضرت یوسف علیه و السلام از بین برادران محبوب ترین فرزندان در نزد حضرت یعقوب علیه و السلام بود چرا؟ که در پیشانی حضرت یوسف یک نوری بود که حضرت یعقوب در یافته بود که نور نور نبوت هست یعنی این پسر من به نبوت مبعوث میشن نبی میشن یا به وسیله وحی مطلع شده بودن یا نوری که در پیشانی بود بنابر همین نور در یافت که یوسف علیه صلات و سلام یکی از انبیای الهی هست خود همین محبت یوسف علیه الصلاة والسلام را در قلب حضرت یعقوب بیشتر می بی خداوند متعال در قرآن بیسوشیش جا از حضرت یوسف ذکر کرده یعنی نام حضرت یوسف بیسوشیش بار در قرآن اومده بیشترین داخل خود همین سوره آمده اما در جاهای مختلف قرآن ذکری از حضرت یوسف آمده است اینکه خداوند متعال سوره یوسف را احسن القصص بهترین داستان ذکر کرد به خاطر اینکه این سوره حکمت‌های اداره بجا خودش یک حلاوت و یک شیرینی عجیبی در این سوره هست احوال یک خانواده احوال پدر با فرزندان احوال برادر با برادر، معاشرت برادران ناتنی، روستانشینی و شهرنشینی، از روستا به شهر منتقل شدن، یک روستایی حکومت شهر را به دست گرفتم و همچنین محبت بی جای پدر، بیش از حد پدر که اثراتی را برای اونها گذاشت و همچنین خداوند متعال اعتای نبوت، اعتای پادشاهیت به حضرت یوسف علیه صلات و سلام حسد، اونهایی که حسد کردن، عاقبت حسد چگونه شد؟ و چه اثرات منفی را برای آنها آورد؟ در مقابل حسد، اون محسود، یعنی کسی که روح حسد شده بود، چه اکثر عملی داشت چگونه با اونها برخورد کرد که آخر حضرت یوسف فرمود لا تصریب علیکم اليوم و شما ملامتی نیست و همچنین بیان این که این همه چیزها در قدرت الله رب العالمین و تقدیرن خیلی از اسباب کید بکار برده شدند جایی هیله کردن تا یوسف را بر بدارن جای حضرت یعقوب هیله کرد که برادران اونجا گرفتار اهل مصر نواشم نه هیله پدر اونجا کاری درست کرد نه هیله فرزندان اون چیزهایی خواستند که به نتیجه دیگر برسند یعنی همه چیز به تقدیر الله رب العالمین بستگی دارد بعد تقدیر اون چیزی که تقدیر باشه همون چیز اتفاق می افتر. بعد بیان دعوت الله. اسلوب دعوت اسباب دعوت و روش دعوت انبیا چگونه بود و با چه اسلوب آدم به طرف وحدانت الله رب العالمین دعوت میدادند. بعض بعد اجاز قرآن کریم اجاز قدرت که اونها با تمام نیرو برای از بین بردن یوسف تلاش کردن اما وقتی که تقدیر باشه و قدرت الله رب العالمین باشه همون چیزی که خواست پروردگار هست همون چیز اتفاق می افتاده و بعد این که خلافت زمین لاستخلاف نکن فی الأرض که استخلف لذیر من قبلی الله میفرماید که من شما را خلافت زمین عنایت میکنم و در قرآن الله رب العالمی هم جدی آیی نازل فرمودند که و کتابنا ولقد کتبنا في الزبور من بعد ذکری ان الارض يريسها عباد يا صالحون میگه ما در کتابهای آسمانی و زبور این چیز را تایید کرده ایم که این مالک این زمین حکومتی مردم از آن بندگان صالح هست پس اگر صالح باشی با صالح بودن میتونیم که حکومت را بگیریم با روشهای های درست و روش اسلامی به قدرت میرسید یعنی انتقال قدرت این که از حکمتهای بزرگ سور یوسف انتقال قدرت از یک پادشاه به یک نبی اما انتقال قدرت به صورت چی؟ به صورت درست پس این است که خداوند متعال میفرماند که قدرت را بگیرید اما قدرت با صالح بودن هست صالح باشید نیک باشید به قدرت میرسید پس انتقال قدرت از یه حکومت به شخص دیگر با صلاح و نیک بودن هست یوسف علیه صلاة و صلاح از روستا از کنعان رفت به مصر و حکومتی اون شهر متمدن مصر که شهری که با دار سالها سال داره تمدن بودن اون شهر متمدن بزرگ مصر را یوسف علیه صلاة و سلام شد این است که الله رب العالی در این سوره این حکمت بزرگ را هم بیان می کند که چگونه یک روستایی از روستا مالک شهر متمدن بزرگ میسر شد پس انتقال قدرت حکمت می خواهد. گرفتن حق با حکمت و بسیرت است نه با اجوار و اکراه، نه با فساد و خرابکاری این حکمت بعدی در این سوره، شایللہ جلوتر می رسید. پس خداوند متعال این داستان یوسف علیہ السلام را الله بیان فرمودند که چگونه یوسف از دست ظالمین رهایی یافت و در مقابل صبری که از اونجا در مقابل ظالمین پیش کرد شکیبایی که حضرت یوسف علیہ السلام برای خودش اختیار کرد او را به پادشاهی بزرگ مصر رسان ابد این که الله رب العالمین به این طرف اشاره میکنه که همیشه صالح باشید خیرخواه باشید خیرخواهی حضرت یوسف در چند جاه هست یک در مقابل برادران خیرخواه بود در مقابل خانم عزیز مصر خیرخواه بود در مقابل زندانیها ها خیرخواه بود در مقابل تعبیر خواب خیرخواه بود در مقابل اون قحط سالی خیرخواه بود و در تقسیم ثروت هم خیرخواه بود الله رب العالمین تعلیم میده که خیرخواه بودن برای برای هر انسانی او را به کمالات میرسونه به جایگاه‌های بزرگ میرسونه یوسف علیه و السلام خیرخواه بود که بزرگ شده این است که هست دین النصیحه دین خیرخواهی است اگر خیرخواهی انسان به جایگاه‌های بزرگ میرسه بهترین آدمها تسایند که خیرخاهی بنی نوای بشر مثل خودشون هستند و برای بشریت خیرخواه اگر خیرخواه باشید اینجا جو صالحین و بهترین آدمها قرار میگیرید پس این است که الله رب العالمین این خیرخواه بودن را در صفت انبیا قرار داده مسئولیت انبیا خیرخواه بودن هست این است که انسان‌های خیرخواه در دنیا بهترین آدمها هستند که میتونن تمدنها رو تغییر بدن میتونن تاریخها رو رغم بزنن و میتونن که حکومتها رو هم سرنگون بکنن خیرخواب بودن امت هست پس منظور از اینجا قصه هست که الله رب العالمین دارن بیان می کنن در مورد حضرت یوسف علیه الصلاه و سلام مسئله بعدی صبر یوسف و بعد آزمایش بزرگ الله رب العالمین خداوند متعال همیشه صالحین را آزمایش می کنن حدیث صحیح داریم که کسانی که صالحان و صالحین صالحین همیشه آزمایش اونها سختر می شه نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت بیمار بود تب ایشان خیلی شدید تر حسبت به آدم های عادی بود فربودن که هرچه انسان مقامش بیشتر باشه الافضل فالامسل فالامسل بهتر افضلتر باشه امتحان سنگینتر پس امتحان صالحین بزرگتر یوسف علیه صلی اللہ در امتحانات بزرگ قرار گرفت از چاه کنعان گرفته تا اصارت داخل فروختان داخل مصر و از اون حیله های و در عاقبت کار سیدن به سمران پس آزمایش و ابتلا اگر کسی در مقابل آزمائشات صبر بکنه به درجات بزرگ می رسیم صبر مفتاح الفرج که صبر اون کلید گشادگی هست حضرت یوسف عليه الصلاة والسلام سابر کرد پادشاه مصر شد یعقوب علیه صلاة والسلام سابر کرد دوباره یوسف اون معشوق از دست دادش بی یوسف علیه صلاة والسلام رسید بعد این است که رضا بالقضا رضا بالقضا درس بعدی هست که باید در خود اتفاقات راضی باشیم بر اون چیزی خداوند متعال پیش می‌آورم بعد از اون عروج اقوام و زوال اقوام چیز تاریخ ها رو از بیمی برده اون سرنوشت و کار خود آمال انسان هم. لا یقیر ما بی قومن حط یقیر ما بی چیز یک چیزی را از تغییر می دهم. عروج و زوال امت در آمال خود امت ها هست. اینجا عروج حضرت یوسف و زوال برادران اینجا هم در امالی بود که اونها انجام دادن. و بعد این است که گناه گناه هرگز راحتی نمی آورد اینجا چند گناه هم ذکر شده یک گناه برادران ذکر شده گناه هرگز راحتی و سرور و آرامش را به انسانها هدیه نمی کند برادران گناه کردند یک عمر با عذاب زندگی کردند. همیشه حراسان که پدر مطلع نشه مصر می میترسیدن آخر هم در مقابل یوسف سر تعظیم خم کردن و معذرت خواهی کردن پس گناه هرگز راحتی و لذت نمی آوره دو دروغ دروغ هم از انسان آسایش را سلب می چون چون کسی که دروغ میگه همیشه حراسان هست پریشان است که دروغن اینجا برملا میشه. و گناه بعدی گناه زلیخا زلیخا هم اینجا گناهی کرد یوسف علیه صلات و سلام را به فساد و گناه دعوت داد. گناهی زلیخا او را به اشتش نرسان و او را در مقابل این همه وصابیس و قیده که بکار برد رسوا شد و سر افکنده شد آخر اعتراف کرد که همه کاری کرده اعمال زشت من بودن پس مسئله بعدی هم اینجا بود که اون چیزی که باید همیشه گناه آسایش نداره حکمت بعدی عدل و انصاف کسی که عدل داشته باشه اون میشه راحت و سرفراز میشه به بزرگی و کمالات میرسه و بزرگی انسان درگزر کردنه از لغزش ها کنی اگر کسی در مقابل لغزش کسی درگزر کرد به بزرگی میرسه یوسف علیه صلی و سلام، در مقابل اون لغزش برادران در گذر کرد الله رب العالمین کرامت یوسف را در مقابل برادران بیشتر کرد و مثل بعدی نگهداری از نفس ضبط نفس نفس اینا نفس میشه انسان رو به بدی و گناه عمر میکنه اگر کسی نفس خود را محکم گرفت و نفس خود را در اختیار داشت ای شخصی در نزد الله رب العالمین محبوب میشه کسی که نفس را در اختیار نگیرد و از نفس پیروی بکنه به ذلت و خاری میرسد یوسف علیه الصلا و السلام بر نفس خودش کنترل داشت الله رب العالمین درهای بسته رو باز کرد زلیخا نفس را جلو کرد رسوا شد و رسوایی برایش زغم خورد پس بنابراین و مسئله بعدی که بیان شده حسد هست. حسد، حسد چیزی که یاوره رسوایی هست. حسد انسان از بین میبرد. در داستان یوسف علیه الصلا و السلام حسد برادران اینجا آمد که این همه هیله و این همه مکره به خاطر حسدی بود که برادران نسبت به یوسف علیه الصلا و السلام داشتن. پس حسد همیشه انسان رو تباه می‌کنه. حسد اعمالو از بین میبره حسد چه میگن. حسد یعنی این که اگر کسی نعمت داره میگه خدایا اون ال نعمتش گرفته بشه شکست بخوره، رسوا بشه فراری بشه مالش از دستش گرفته بشه من خوب بشم من مالدار بشه این ماشی معلمن باشه این منزل معلمن باشه از فلانی گرفته بشه فلان مقام معلمن باشه از فلانی گرفته بشه این هست حسد حسد اعمال را به صورتی از بین میبرد که آتش چوب را میسوزاند حسد هم همین کارو میکنه که انسان را از بین میبرد پس وراداران حسد کردن آبدترین سرنوشت بر اونها رسیده و راه اما غیبت خوردن غیبت این است که فلانی داره من هم داشته باشم اون هم داره مبارکش باشه من هم داشته باشم این خوبه این ممنون نیست اما در مورد علم حسد بکنیم نه دنیا دنیا جای حسد دنی. اینها از بین میرن کسی علم داره حسد بکودی فلان شیگا علم خوبی داره استفاده میکنه خدایا به منم این علمو بده تا استفاده کنم فلانی فوردار هست صدقه میده خدایا به من هم بده تا صدقه بدم نوع حسد خوبی علاج حسد چیه اگر از علا حسد بعد علاج کنی چون اگر علاج نکنی اول خودتون از بیماری همیشه قلبتون شما رو میخوره یه خری در وجود انسان هست این حسد همیشه اذیت هستی عذاب وجدان داری وجدان شما راحت نیست علاجش چی؟ الایشین راه علاج خیلی اصولی هست علاج حسد یک اول اون کسی که نسبت به اون حسد داری تعریفش خود جلوی مردم انسان حسد خیلی بد میکنه زندگی رو تباه مین حسد غیبت و می آوره. حسد خیلی گناه ها رو دنبال خودش داره تعریفش کن این صورت تعریف کن که فلان آدم خوبیه خیلی خوبیه جلوی مردم چند بار تعریف کن حسال از قلب میره بیرون و دو در غیاب برایش دعا بکن دعا خیلی برایش بکن وقتی اینها رو بکنی شیطان دیگه هم کاری نمیکنه شیطان قبلا رو داشت هم کاری راه نشان میداد اینجوری بکن تاکین شکست بخوره رسواش بکن غیبتش بکن باش تعریف بکن اما اگر تعریف خیر کردید. و دعای خیر کردید شیطه فرار بیت حالا داره که از مسیر من آغا بیرون پس علاج حسد این است حالا سوره یوسف سوره یوسف چرا نازل شده چرا داخل قرآن کریم و با این تونی داستان یوسف علیه علیه و سلام برای امت های گذشتی هم بوده در تارات و انجیل هم بوده به این صورت اما صورت های مشترکی هم ها داریم انشالله اون چیز در تارات و اونه ها ر از قرآن و هم میگم با روایت مستند صحبت میکنیم. آن چیزی از کتاب‌های آسمانی آمده ان داستان یوسف را کامل اگر تمام شد البته اگر اینجوری بری تمام نمیشه اما اگر توانی تمام کنین با کتاب‌های آسمانی ان داستانشو جلو میرید حالا داستان علت نزول این های مختلفی بیان شده یک علتی هست میگن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلام وقتی گفت همیشه قرآن تلاوت میکرد و قرآن میخون برای صحابه کرم. یک روز تغذایشو یا رسول داستان برای ما تعریف بکن. یکی دو تعریف بکن. الله رب العالمین واحد نازل کردند که احسن القصص را تعریف میکنند. زیباترین داستانو تعریف میکنند. صوره یوسف را نازل کرد که زیباترین داستان که الله رب العالمین برای صحابه کرم آوردند. اهلت دوم اللہ رب العالمین سور یوسف را برای نبی مکرم اسلام نازل کرد برای تسلی قلب زیبای نبی کریم اگر این اهل مکی دارن شما رو ازیت میکنن اینها کیم؟ از یک طرف امو ابو لحب داری باد میگیم ابو که هنگام تولد نبی کریم غلام و کنیز آزاد می کر. اون ابو هم دشمن شده وقتی نبی مکرم اسلام قال ان گفت ای مردم ایمان را قبول کنی قولو لا اله الا الله توفلیحو ابو لهب گفت طبن لك يا محمد الهازا جماعتنا بدو اقدر النبي كريم را صلى الله عليه وسلم الله رب العالمين فوراً انتقام نبی کریم را گرفت که دستاج بخوش کن ای ابو لهب داری به نبی من بد میگی تو اینجا نبی و از طرف قریش بودن همه هم قرش 24 شاخ داشت بنو هاشم بود بنو مخزوم بود قریشیها ها بودن بنو امیه بود قبائل مختلف قریش. همه بستگان نبی کریم بودن همه قوام نبی کریم بودن همه دشمن بودن الله رب العالمین فرمودن که اگر از این بستگان داری اذیت میشی و شما از, از اینها آسی شدی پس ببین که یوسف بر را برادرانش اذیت کردن برادران پدر در بیت نبوت همه مسلمان بودن برادران هم فرزندان یعقوبند. پس اونهای که فیغمبرزادی بودن فیغمبرزادی ها اومده یوسف رضیت کردند پس اینا که میمانی ندارن پس باید برای شما دیگه تحملین ها بیشتر باشه این یک تسلی بوده نزول سوره یوسف برای ذات اقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم علت بابی بعضی گفتند که یهودی ها اومدن سوال کردن همیشه وقتی که نبی مکرم اسلام داستان تعریف می کرد مشرکین مکه متوسل به یوحنا چه بگیم یکیش سوالی اشگاهی بگی که ما مطرح کنیم که بتون جلوش بگیم گفتم بپرسید که چرا یعقوب از کنعان به مصر منتقل شد علت انتقالش اون که نمیدونه بی سوال بود داخل مکی بود اونها که مصر بودن این سوالو بپرسید الله رب العالمین به تمامی داستان یوسف را از دول تا آخر بیان کرد اونها رو حیرت زبه کرد مبهوت و مات و مبهوت شدند که این داستان با این زیبایی که مصدق تارات بوده اونها خبردار بودن یهودی ها داستان داره باید میشه کامل درسته اینها جا خوردن پس این نبی هست و بعضی گفتند که علت بعدی یک روزی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم سور یوسف را تلاوت میکرد یک ملایی از یهودی ها دانشمندی از یهودی ها شنید گفت داری یوسف را تلاوت میکنی از کجا میدونی گفت الله نازل کرد الله فرستاده بعد رب بقی یهودی ها رو فراخن بیای گوش کنی اون چیز در تورات اومده از داستان یوسف در خیلی زیبا تلاوت میکنی همه گوش کردم وقتی نگاه کردن فهمیدم که داستان کامل درست هست و بیضافه اجاز کلام و بلاغت کلام الهی اینها رو بیشتر مرعوب کرد و میگویند که اومدن مهر نبوت را از پشت نبی کریم نگاه کردند و همیشون از تعجب اسلام را قبول کردند مسلمان شدند پس بنابراین اینها حکمت های اول سوره یوسف بودند حالا چون که می فقط حکمت ها رو بگیم به اضافه داستان همه آیات و تفسیر نمی کنم در تفسیری که برسیم به ترتیب اگر عمری ما رسیدیم فقط سوره بغره بیش از پنج سال نزدیک شیش سال سوره بقر ما رو نگه داشت اگر هم دوباره عمری بیمانی بی به یوسف برسیم یا نرسیم رسیدیم اونجا مشاءاللہ مفصل آیاتو میگیم اما اون چیزهایی که از داستان میخوایم بگیم بیضا فکمتها اول داستان یوسف از خواب شروع میشه. الله رب العالمین داره از يو... خواب یوسف را اینجا میگوین چی هستی یوسف؟ از قال یوسف لعبی یا عبتی اینی رعیتو احد عشر قوکم و الشمس و القمر رعیتوم لی ساجدیم لا... پدر جان خواب عجیب دیدم دیدم که یازده تا ستاره اضافه خورشید و ما منو سجده میکنن. رعیتوم لی ساجدیم دارم منو سجده میکنن. ایک روزی داخل داخل مدینه منوره صحابه کران سوال از نبی کریم پرسیدن گفتن که یا رسول اللہ من اکرم الناس بهترین آدم ها کیه داره شرافت زیادی باشه مکرم ترین آدم ها کیه نبی مکرم اسلام فرمودن که اتقاهم الله کسی که تقواش بیشتر باشه بهترین آدم هاست گفتن لیس انخازن من منظور ما این نیست فرمودند فی یوسف نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله ابن, ابن, ابن خلیل الله پس یوسف خودش نبی پدرش نبی پدر بزرگش نبی و پدر بزرگ دیگر خلیل الرحمن هست ابراهیم خلیل هست فرمودند لیسن هذا نسالو منظور ما این هم نیست سوال ما چیز دیگر هست فرمودند فامن معادن العرب پس منظور تو اون از اصالت قومی عرب ها هستن گفتم بله کدام قوم بهتری فرمودن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اضافه گو که ساندی که قبل اسلام بهترین آدمها ها بودند اگر اینها اسلام قبول کنند بهتر آدمها میشن چون که شرافت نسبی داره قبل اسلام هرچند شخصی مثل محمد و شیخ ایندی خیلی خوبه چرا در بعضی از اخواشون شرافت نسبی آنها خیلی صفات خوبی داره و همون چیزهایی اسلام اونها رو مطالبه از انسانها میکنن. پس یوسف اینقدر مکرم هست فرمودن که نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله ابن, ابن, ابن خلیل الله اینجا نبی مکرم اسلام اکرم و ناص یوسف را ذکر کردن اینجا یوسف فرمودن که پدرجان حالا اینجا یوسف کجا هست بعضی گفتن که یوسف دو خواب دید ایک بار خواب دید که از داخل زمین حالا این خوابتو بیتونو تعریف کنید به سن دوازده سالگی که رسید دوباره این خوابو دید دوازده سالگی رسید خوابو دید که یازده تا ستاره با ما و خوشی دارن به سجده افتادن حالا ستارگان سجده نمی کنن ما و خوشی سجده نمی کنن سجده کار زویل اقول هست فورا حضرت یعقوب علیه صلات و السلام تعبیر خواب و فهمید و راهکار داد اینجا باید بگیم. حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام راهکار داد راهکار چی بود تا هاو را تعریف نکن برای هیچ کس برای خودت نگهش دار زمانی پادشاه مصر خواب می‌بینه اونجا حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام راهکار میده راه نجات چگونه هست. پس یک عالم و یک دانشمند هنگام بیان مسئله به صورت در مسئله بیان می‌کنه بعد راهکار هم می‌ده این راهکار درست چگونه از اون مخمصه از اون مشکه بیرون می بی و راه نجات چیه اینجا کار اول حضرت یعقوب علیه السلام, السلام کرد اینجا حضرت یعقوب فهمید که الله یازده پسر من دارم غیر از یوسف اینا پسرانند و پدر و مادر هم زنده بودند پس این تعبیر کرد که فهمید که اینها همین برادرانند و منو و مادرش حضرت یعقوب فهمید که کمالات پسرم آینده خیلی بزرگ خواهند رو و مقامات بزرگی خواهد رسید قله‌های بزرگ را فتح خواهد کرد. به خاطرین دیگه فرمون خواب و تعبید برای کسی نگو اینجا حضرت یاقوب علیه صلی و صلی خانمش راهیل را به قمر تعبید کرد. اما جالب همینه مثل همین خواب حضرت صفیه رضی الله تعالی نهادید صفیه امو الممینین هنوز مسلمان شده بود وقت نبی مکرم اسلام خیبر و محاصره کردن بعد خیبر هم در نوردیده شد و خیبر فات کردند یهودو گرفتند گرفتن همون شبش روز بعدی حضرت صفیه اسیر گرفته شد اسیر گرفته شد آورده شد پیش نبی که داستانش طولانی دا بحث داستان نمیرین آخر به عقد نبی کریم بیرون شد خواست نبی مکرم اسلام زفاف بکنن گفت اینجا نه مقام صحبا بود بریون جلوتر ازدواج بکنن خود یک دیروز یک یهودی بود امروز مسلمان مخلص و وقتی نبی مکرم اسلام در خیمهش تشریف بردن دید صورتش زخمه فرمود این زخم صورت چیه؟ فرمود که یا رسول الله من قبل از این که شما به خیبر حمله کنید من خوابو دیدم خواب دیدم که ماه از آسمان کنده شد در دامن من افتاد و به شوهرش گفت که خوابی دیدم شوهر سرداران بود گفت من خوابی عجیب دیدم که ماه از آسمان کنده شد در دامن من افتاد بعد از این میگه شوهرم محکم زد تو صورت من گفت تو تمنای شاه مدینور داری که همسریت بشه یا نبی مکرم اسلام یعنی شوهر کامل متوجه شد که اون ماهی داره در دامنش میاد اون نور نبوت هست گفت حالا تو اسلین که تمنای شاه مدینور داری بیاد تو عقدت بیاد محکم تو صورت زد اما شاه مدینه هم در عقدش اومد نبی مکرم سلام صلی اللہ علیه وسلم <تصفيق> پس بنابراین اینجا وقتی که حضرت یوسف علیه صلی این چیزو دیدن که من یازده تا ستاره با ما خورشید دارن سجده میکنن این علامت چی بود؟ علامت خضو و این بود که یوسف علیه صلی در مقابل برادران این قدر بزرگ میشن که اینا ها باعث سر تاضیم رو خم بکنن. حالا این مقام ز اگر اونها ها مطلع می قطعا دشوار می و قطعا کار خطر نقطری هم میکردن به خاطر طول که از بین برادران یک برادر ناتنی برادر ناتنی بیا این قدر بشه که اینا ها تذیمش بکنن و این بود که از زیر دست او بشن. قاضی میگه زیر دستش قرار میگیرن این سجده به امام حاضر بخاطر این حضرت علی فرمودن که لا تاسس را یا کالا نگاه یوسف این قصه رو و خواب رو تعریف نکنی برای برادران این مشکل ساز میشه حالا این که ظاهر شد امروز یوسف سن دوازده سالگی خواب دید علما میفرماید که 40 سال بعد تعبیرش اومد. و بعضی میگن که 80 سال طول کشید تا تعبیر بیشه. که اول طفولیت دید و در پایان حکومتیش که اونها مصرفتن تعبیر شد. بعضی میگه هشتاد سال بین خواب تا تعبیرش طول کشید. اما خواب انبیاء وحی هست. این خواب و یک نبی دیده بود و خواب نبی وحی هست و قطع این چیز هم دلوتر اتفاق می افتاد. پس بنابر اینجا فرمودند که حضرت یعقوب علیه صلات و لا تقصص رویاک علی که معظم باش که نخوابو برای برادران تعریف نکن که مشکل ساز میشه و مشکل درست میکنن مشکل چی بود؟ حسد می آید و این حسدی که انها رو از راه بدر میکنن مشکلات بزرگی رو درست میکنن فی اکیدو لفه که دا. برای تو حیله های بزرگی رو انها آورن و مشکل ساز میشن پس اسباب قید و اسباب حسد یک از اسباب حسد همین است. پس حضرت یعقوب علیه صلی با درک مفهوم فورا برای حضرت یوسف علیه صلی و راهکار شد. موازی با از این مخمسی باید بری بیرون. اول جلاش بگی تعریف نکن این چیزو. حکمت بعدی حضرت یعقوب علیه صلی فهمید که اسباب حسد این مقام بزرگ حضرت یوسف است. پس این اسباب سبب حساس میشن پس اگر کسی بنابر اسباب یک داستان آینده را پیش بینی کرد این در پیشگویی وارد نیست ممنوع هم نیست چون پیشگویی ممنوع هست در حدیث داری اگر کسی پیش پیشگویی پیش بره ارافی بره برایس الا فالس نگاه بکنه از آیندهش بگه تاسیه روز نمازین قبول نمیشه دولای این پیشگویها سایه ها نریم اما اگر کسی بنابر اسباب یک داستان رو حد سزد اسباب و دوباره آینده رو پیش بینی کرد این ممنوع نیست و این جایزه حضرت یعقوب علیه السلام اسباب حسادت را اینجا دید که حسادت میکنه علت او رو بیان کرد پس بنابرای هوا شناسی داره شما رو خبر گیده چند روز با باران میاد توفان میاد هوا میاد روی اسباب داره میگه این در علم غیب هم نیست و در پیشگویی هم وارد نیست و این مشکلی ندارد. پس این یکی از حکمتها های بیرو میشه این درس این است که اینجا میشه از اینجا برداشتش کرد. و بعد این است که و وقتی که خواب دید باید خواب را نبی مکرم اسلام فرمودن اگر کسی از شما این هم بگم برای خوابها کسی از شما خواب دید خواب خوبی بود خواب خوب بگو برای مردم بگو اگر خواب بدی دیدی خواب بد را تعریف نکن چرا؟ تابیر های غلط میتونه اینجوری می شود اوه می میری تو دیگه بیچاری میشی، تعبیر میشه بیش و نشه این دیگه خودش برده نگران آرام می شود اگر خواب خوب دیدی تعریف کن اما خواب بد دیدی خواب تعریف نکن چه چکار کن طلیت حول الان بگر تو تغییر بده اگر دست راز خوابی دست چپ بخواب و آب توف بکن برای سمت شب و اوز بی الله بخون اوز بی بار من وا هم چیزی نگو تعبیر نمیشه نگران نمیشه پس در خوابت باید اینجوری عمل کنید گاه گاه خواب میبینید از خواب میپرید خیلی می میترسید خواب نمیرید میخوابید دوباره تکرار میشه دوباره میترسید راه نجات اینه از خواب بیدار شدی بغت تو تغییر بده آب دهن دست توف بکن خیلی مختصر نه زیاد اول روی خانم بیاندازید خیلی مختصر و با اعوذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بعد این خواب تاثیری نداره و نگرانی ورانی میشه اما در این حدیث دیگر داریم نبی مکرم اسلام فرمود این خوابه که میبینی روی پای پرنده آویزانه به محض تعبیر کردی میفته اینجوری نیست تعبیر کردی همون جوری میشه حالا شما خواب میبینی تعبیر پولدار میشید اینجوری حتما باید پولدار میشی یعنی تعبیر خواب فرمودن خواب روی پای پرنده آویزان ره. یعنی چی یعنی به واسطہ تعبیر کردی شما فکر میکنی همین جوریه تو قلبت میوفتی حالا نگران میشی حال خواب مسیر خودشو تعیین میکنه شما درست تعبیر کنی یا غلط تعبیر کنی خواب میره رو مسیر خودش چگونه بوده همون تعبیر میشه تعبیر ماها نیست امروز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نشستی بود داخل صحیح بخاری حدیثی دارید صحابی آمد و خواب تعریف کرد صدیق اکبر فرمودن کہ یا رسول بذار ما تعبیر تعبیر کن تابیر کرد گفت این اسلام است دین هست و علاوهت اسلام است داری میخوری استفاده می‌کنی فرمودند که درست تعبیر کردم فرمودند که بعضی درست بود بعض اشتباه بود همش درست نبود بعضش درست گفتی بس و فرمودند که قسم داد که یا رسول اللہ کجا اشتباه بود گفت نه قسم نخور نمیگم پس خواب مسیر خودشو تعیین کنه و حدیثی دیگر داریم فرمودند خواب را برای دو نفر تعریف کن یا حبیب یا لبیب یا دوست سمیمی واقعا دوست باشه هرگز بدخواه شما نیست باید دوستها که ظاهر دوستم اما راضی به روشت شما نیستم خوبیش ما رو نمیخوام یا واقعا دوست سمیمی باشه یا شخصی باشه لبیب دانشمن تعبیر خواب بدونه تعبیر کنید برای هر کس هم تعب... تعریف میکنی خوابها رو پس اینجا حضرت یوسف علیه صلاة و صلاح خواب دید و فرمودن که تعریف نکن. چرا تعریف نکن؟ چون این خواب یک نعمت هست یک نعمت بزرگ و در حدیث داری نبی بکررل اسلام فرمودن که استعین و علا قضای حوائج بکت ها همیشه نعمت خود را مخفی نگه داری. برای هر کس نگید زیرا که لکل فین کل نعمت محسودون هر کسی که نعمت داشته باشه قطعا خساد کرده میشه اینو همیشه نیمه خوبی ها رو فاش نکو چیز داری مخفی نگاه بدار خیلی فاش میکنید دشمندار میشید و و حسد و حسادت برای شما دیگه مشکل درست میکنه حالا اینجا یعقوب علیه السلام حضرت یوسف را از بین فرزندان خیلی زیاد دوست داشت عاشقش بود عاشقی تمام ایار بود خیلی دوستش دار. اینقدر دوست داشت که از طرف حضرت یوسف نمیخواد از دلش برید دور همیشه پیش خودش بود و عشق میبردید و قلب یاقوب را یوسف تسخیر کرد. کل قلب یاقوب برده بود برادران احساس کردند که این برادر ما یوسف حالا پدر ما رو بوده قلبش معلومانی اسمال او هست حالا اینها ها راه را پیش نها دادن هنوز از خام و نیستند تا آخرم خبردار نشدن چون پدر گفت تعریف نکنم. اما این احساس کردن که یعقوب قلب یعقوب مسخر یوسف هست حالا چه گفتن گفتن یا یوسف را از قلب بیرون کنی یا اینکه یوسف رو را از راه بر می‌داری دو راه غیر از این نیست یا یوسف باید برداشته بشه یا از قلب بیرون بیاد و از قلب کار اونها نبود چون قلب در اختیار اونها نبود بعد رو از راه بر می‌داشتن پس بنابراین اینجا اومدم به خاطر این محبت این مشکل رو پس یک حکمت بدی حکمت این اگر پدری بین فرزندان عدل نداشته باشه، قطعا دشمنی بین فرزندان حاکم میشه. اگر پدری عدل نکنه، از بین فرزندان یکی رو بیشتر دوست داشته باشه، و یکی از اونها بیشتر نعمت بده، بیشتر کمک بکنه، بیشتر به او برسه، قطعا بین فرزندان دشمنی میاد و حتی فرزندان دیگه با پدر هم دشمن میشن. و این قطعا فیش می آیاده. حمین داستان اینجا بود حدیثی داریم داخل صحیح بخاری کتاب الهبا نعمان ابن بشیر مادرش امره بود امره بنت رواحه و پدر هم بشیر بود امره بنت رواحه یک شاعری بود یک شاعر تمام معیار چون برادرش عبدالله ابن رواحه بود برادرم یک شاعر بود شاعر رسول الله بود و یک هر هم شاعری بود و بعد ازدواش که بابشیر ازدواش که حالا چونو که خود شاعر بود و خیلی معروف مشهور بود و خود شیر از خانواده دیگری فرزند داشت و دار صاحب فرزندی بود و حالا دگاه کن من دیگه فرق میکنم برای این بچه من یک چیزی بده یک نعمتی بده یک مالی بهش بده یک باقی داشت این باغ به اسم پسر من بکنم گفت باشه مال پسر تو مال نومان هست وقتی اینجوری کرد گف خانون گفت نه قبول نیست بری پیش رسول الله صلی علیه و اللہ ایشان قبض رو بنویستن و شاهد باشن رفت پیش نبی کرین فرمودند که بشیل به همه بچه هایت این قدر دادی یا نه تنها به این دادی گفت نه به این فرمودند که من شاهد ظلم نمیشه من شاهد باش داره ظلم میکنی این جایز نیست حالا فرمودند فتق الله از الله بترسید وعدلوا بین اولادكم بین فرزندان عدل بکنی اگر نکنی مشکل ساز دوباره اومد و باقو پس بری گفت من باقو نشون میدم همین بچه‌ها این تقسیمی میکنم اینجا نبی کریم فرمودند که عدل بکنی چون اگر این کار نمیکرد، هم مشکل همین دشمنی درست میشود به خاطر این شریعت میگه اگر پدر زنده هست و میخواد مار را تقسیم کنم با بین دختر و پسر مساوات چون حالا در پدر میده این این هدیه است اگر پدر فوت کرد و رفت بعد از اون دیگه سهم پسران دوباره آور میشه اما پدر می‌خواد بده بعد اینجا داشته باشه اما حضرت یعقوب علیه الصلاۃ و السلام در عطا بیشتر نمیداد محبت قلبی غیر اختیاری بود و خاطر محبت قلبی غیر اختیاری حضرت یعقوب هیچ تقصیری نداشت چون غیر اختیاری و از غیب آمده بود حالا شما می‌بینه عاشقی کسی میشی و وابسته میشی هر چمیکی بیرون نمیره. غیر اختیاری اینجا عشر غیر اختیاری در قلب آمده بود و ای عشر غیر اختیاری یعقوب ملامت نمی کرده به صورتی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم صدیقه کبرا صدیقه کبرا حضرت آیشه صدیقه رضی را خیلی دوست داشت فرمود اللهم ها قسمی بید ای خدا در جای من میتونم اختیارت در عدل میکنم شب میرم یعنی همه تقسیم مال درست. اما الله هم پلاتو اخذنی فی ما عمله چیزی در اختیار من نیست اون محبت غیبی که از عایشه بیشتره من مو نکن پس اش غیر اختیاری میاد و حضرت یعقوب علیه الصلا و السلام غیر اختیار وابسته حضرت یوسف شده بوده پس بنابراین حالا این داستان وقتی یوسف علیه و السلام خواب دی کجا تعریف کرده بعضی میگن اینجا تعریف کرد چون فهمید خواب خیلی عجیبه تنها پیش پدر رفت پدرزن خواب دیدم پدر تنها بود و وقتشانی خیلی خوشحال شد مسرور شد خیلی خوشحال شد و بعد در تورات اومده در کتاب تورات اومده قبر جلوی فرزندانش گفت و وقتی خواب تعری به جلوی برادران خیلی ناراحت شد چرا فهمید بچه اتفاق اینجا دیگه ناراحت میشم اما داستان قرآن این است که خوشحال شد این داستان درست سر هست الله میگه قران کریم که کام کلام الهی هست پس بنابراین اگر کسی که این استقاد پس اسباب اسباب رث گناه و مصیبت را باید اختیار کند حالا قرار گناه پیش بیاد یا مشکل ایجاد میشه وقتی میدونید و درک کردید باید اسباب را به کار شما اسباب رو برای اینکه از این گناه جلوگیری بشه و در این مشکل من واقع نشم باید این رو انجام بدی اینجا حضرت یاقوب این را بکار برد اما اینه بدانیم، اینکه ما داریم اسباب را بکار می این وظیفه شرعی هست که باید از اسباب استفاده بکنیم اما همون چیزی بیش تقدیره اگر تقدیر باشه میشه تقدیر نباشه اون اتفاق هم نمی به هر حال بعد ازین وقتی که حضرت یوسف علیه و السلام داستان تاریخ شد حسادت و محبتت جلو اومده حالا چرا این خواب این همین سال طول کشید در تعبیرش؟ یک چیزی هم دیگه بگیم حکمتی علما میفرمایند که اگر خواب بدش ما ببینیم یعنی تعبیرش اگر بد باشه زود تعبیر میشه اما خواب خوب دیر تعبیر میشه حالا چیزی که بد باشه خیلی زود تعبیرش میاد میری میپرسی از یه شخص یک به اینجوری میشه یک روز یا همون روز چند روز بعد یک ماه تعبیر میشه اما وقت تعبیر میکن، اینجوری میشس باید صبر کنی سالها سال باید برای تعبیر صبر کنی جهیدین جهید زود هست حکمت چیه حکمت این است که الله رب العالمین این رحمت الله رب العالمین عذره الله بندگانو خیلی دوست داره حالا امروز تعبیر شده بد هست اب یکیه تعبیر بد هست یک اتفاق بد هست دو بدی اینجا هست اگر صبر بکنی سالها سال اینجا زجر و عذابی هست الله رب رالی زود اون اتفاق میفته میان تا که اتفاق رد بشه و از اون مشکل بیا بیرون و همیشه قمزده نباشه اما تعبیر خوب شیرین هست انتظار خوب شیرین هست به قول یک شاعر یا یک کلام زیبا میگن که لذتی که در فراق هست در, در وصال نیست بین عاشق و معشوق میگن لذتی که در, در فراق هست در وصال نیست در فراق شوق لقا هست و در لقاه خوف فراغ اما فهمید یا نفهمیدید؟ این بفهمیدیگه دیگه لذتی که در فراق هست در وصال نیست در فراق شوق وصال هست و در وصال خوف فراق. یعنی این که وقتی کسی آشره کسی میشه همیشه منتظر همین انتظار یرین برای او کمی لسم کمی بینه لذت شیرینه. پس این منتظر همیشه لذت میبره، اما کسی به معشوق رسیده همیشه میترسی حالا میره، حالا میره، حالا میره، حالا میره فراگ میاد، جدای میاد، جدای میاد و غم و زد رو غصه میخوره. پس اینجا این است که تعبیر خواب شیرین الله طولانی میکنه، یک تعبیر خوب اینجا همیشه لذت ببره و دو اون لذتی بعدها حاصل میشه لذت وارای لذت الله رب العالمین بر مؤمن انواعیت میکنه. عاده. بعد فرمودند که این الشیطان علیه انسان عضو و مبین پسرجان نیخواب تعریف نکن فی ل لکه كدا. اینا هیلها درست میکنن اما شیطان هم میگه که دشمن انسانه حالا این دارن بچه ها درست میکنن اما حضرتی یعقوب فورم فرمون شیطان هم دشمن انسانه یعنی چرا به شیطان گفتن؟ اینجا کارکار کار برادران پسران بود که اینها قرار دشمنی بکنن علت این بود که شیطان و علتی که بدی رو به شیطان نسبت دادن علت این است که همیشه شیطان به بدی راضی هست و به بدی عمر میکنه و هنگام بدی کمک میکنه کسی که شیطان اول به بدی رو الغام میکنه در قلب انسان دو اسباب بدی رو فراهم میکنه سه راهنمایی برای بدی میکنه قضی خاطری اگر این برادرم اون حساد در قلب اونا بیاد شیطان اینو کمی فوارتر میکنه اینو بر انبیهت تر میکنه راه بیشتری جلو اونها میگذاره برای انجام دادن کارشون به خاطری فرموند این شیطان از انسان عدو ور میبین که شیطان برای انسان دشمنی بسیار بزرگ است حضرت یعقوب اینج تعبیر کرده بود و کدالک اجتبیک ربکا تسرجان انج تعبیرش کرد و کدالک رب ربکا فارواردیگار تر تو رو انتخاب میکنه بین انسانها و یعلموکا تعلیم دیگه چی؟ من تعبیر الاحادیث تعبیر الاحادیث الله تعبیر خواب و علم نبوت و یتم علی نعمتو علیکا نعمت فراوان نعمت بزرگترین نعمت نعمت نبوت بزرگترین نعمته نعمت کامل عنایت میکنه و علىعا یاقول که معتمما على ابایی که من قبل ابراهیم وحاق و اسحاق ان نرب علی منکیم. ان تاویر کرد تو پیغمبر میش آینده د خاطرینگو حالا چیزی رو نگو. ان انشالله داستان اادامبهش پردا که برادران چیکار کردند دو و شیطان چقدر رانمایی کرد و به کجا رسیدن.